بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسته این جرسه پنجمه توحید اکتاب مسئله که ما بهش رسیده بودیم مسئله اثبات وجود خلاوند بود این موضوع در بین متفکرین اسلامی چه متکلمین و چه حکمای اسلام یعنی فلاصفه اسلامی خب اولین مسئله و مهمترین ای بوده که مطرح شده تو روش فلاسفه اسلامی یه روش مخصوصی بوده که اسمش گذاشتن وجوب و امکان متقدمین مثل امافق راضی و دیگر متقدمین اسلام اونا بیشتر از راه حدوث خواستن خدا را اثبات بکنن یعنی پیدایش آدم اون دسته اول که مثلا فارابی باشه و ابن سینا باشه و اینها اونا گفتن که ما چند تا اصل داریم تا برسیم به اصلات اصول که خداوند متعاده یکی تغییر اشیا که همه اشیاء تغییر میکنه این تغییرم که اسمشون حرکت گذاشتن به دو صورت یکی حرکت وزئی و انتقالیه که یک شه از جایی به جای دیگه منتقل بشه یا در جایی ثابت بهمونه دور خودش بگرده و یکی حرکت ماهیتی است، یعنی تخم مرغ در سر شرایطی تبدیل به مرغ بشه، زیر پروبال مثلا مرغ اونم یه نوع حرکته اون حرکت از قوه به فعله بنابراین میگن که، این عالم از حرکت خالی نیست چه حرکتی که از قبه فل باشه چه حرکتی که انتقال باشه از جایی به جایی باشه بنابراین در مورد انسان ها هم که انسان استعداد داره زبان های مختلف فرا بگیره اعتقادات گوناگون داشته باشه آداب و رسوم مختلف یعنی این حرکتی است در درون اون استعداد اینا رو داره از قوه به فل میرسه بالاخره عالم رو پر میدونن از این نوع حرکت میگن حرکت پیدایش وضع جدید و ترک وضع قدیم یعنی وقتی که مثلا یک تخمورقی تبدیل به مرغ میشه وضع جدیدی رو قبول میکنه و وضع گذشتش رو از دست میده چنین موجودی حتما در مرحله امکانه نه در مرحله وجوب یعنی ممکنه اینطوری باشه ممکنه اونطوری باشه ممکنه اونطوری باشه،, اون باشه هر ممکنی به خاطر اینکه برسه به یه نقطه ثابت علتی لازم داره که اینو مثلا از سخ مرغی به مرغی برسونه اون علت ها ممکنه علت داخلی باشه یا علت خارجی باشه بنابراین عالم ما دائما در حال حرکت الاشیاء کلها متحر کن على دوام عبارتشون تقریبا اینه و من موجودات صورتهای قبلی رو از دست میدن صورتهای جدید میگیرن و همه معلل به علت هستند. یعنی عللی ارز کنم که باعث این قضایه میشه این علت ها رو از کنم که متکلمین دنبال میکنن و رد موضوع تسلسل میکنن تا به یه ای برسن که اون نقطه منشه تمامین علت هاست ولی فلاسفی این کار نمیکنن یعنی عالم عالم امکانه حوادثش ممکنه باشه ممکنه نباشه و خواه نخواه امکان باید به وجوب برسه یعنی اگر که موجودی میتونه اینطور باشه میتونه اونطور یه علتی اون رو کرده به صورت دربارده اون علت هم مثل این باشه بازی علت دیگه میخواد یه علت دیگه میخواد به بعد باید برسن به یک علت و الال و علت سال شد این عقیده متکلمینه بنابراین میگن تمام این علل و تمام حوادث به داخل میرسه به خدای تعالی لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم هیچ تحولی هیچ جنبشی نیست و هیچ نیروی مگر اینکه که متکی به خدای تعالی است این موضوع وقتی که به زبان فلاسفه اسلام جاری شد خب اده قبول کردن و بعد علوم جدید توسعه پیدا کرد در این نوع استقلال اخلال کرد یعنی گفت که شما زباهر اشیا رو میبینین تغییر میکنند باطن اشیا که عبارت باشه از اتم ها نیرو ها انرژی ها اونا ثابتن اتم ها از بین نمیدن از کنم که این ها اون فلاسفه عقلگره خواستن این شبهه رو جواب بدن ولی متاسبانه اونا در دورانی که مسائل از کنم که اطومی و اینها ها بود نبودن برای این که اون فلاسفه به خصوص در ایران ملا سدراست اون رفت رو این قضیه که یه عرضی هست یه جوهری و تاریخ رو بگیم تا بعد به دلایل خودمون برسیم و اعراض مثل حرکت بله خیلی مترکی باید باشه که حرکت کنه حرکت بدون مترک معنی نداره مثل شکل شکل باید یه باشه شکل داشته باشه این نباشه که سالبه به انتفاق موضوعه چیزی نباشه که شکلی نداره اسم اینا رو گذاشتن و اونا رو در نه مقوله شمارش کردن این و او به شکل های مختلف که تو کتاب هست گفتن تمام اینا یه جوهری داره یا یه گوهری دارن یعنی آلم این اعراض نیست آلم حرکت نیست شکل نیست رنگ نیست چون اینا دائما در تغییره و اگر بگیم اون رنگی که قبلا نابود شده یه رنگی دیگه آمده اون این رنگ جدیده ایجاد کرده این غلطه برای که تا اون نابود نشه این رنگ جدید نمیاد تا صورت گذشته از بیندری یه صورت جدید رو بازه نمیاد بنابراین اونی که از بین رفته نمیتونه این ایجاد کنه معلوم که منشه ایجاد نیست این معلوم میشه که دائما صورت افاظه میشه به ماده از کنم که صورت های گذشته نیستن که صورت های بعدی رو ایجاد کنن من مصور الاشیاء تصویر نقش فیض از طرف او میاد بعد اینجا بحث میشه که خب وضع اون ماده اصلی چجور حالا در مصحب از کنم که فلاسپه اسلامی دارم میگم هنوز به اتمیست ها نرسیدیم از کنم که اونا میگن که این جوهری که ما میگیم گوهر اشیاء اصل اشیاء حالا هرچی میخواد باشه باشه که تمام این اعراض به او تعلق میگیره این و وضع و حرکت و رنگ و شکل و مقدار و مکان و زمان و تمام اینها که جز اعراض هستن اینا یک ای یه عالم جدایی از جوهر از جواهر, جواهر اشیاء نیستن اینا با اشیاء شکل شکل یه چیزیه حرکت حرکت متعرکه تغییر تغییر ماده مادهیست است شکلیست بنابراین همونطور که اینا تغییر میکنن چون یه سیستم متصل هستن با جوهرشون جوهر این نام تغییر میکنه چون اینا جدا نیستن که حرکت و تغییر و اینا یه آلم دیگری باشن ماده عالم آلم دیگری اینا با هم هم اتصال واقعی دارن و رضا با تغییریه که دیگری هم تغییر میکنه اسم این گفتن حرکت جوهری بنابر این که عالم از باطن در حرکت، از جوهر در حرکته منطور ما حرکت جوهری نمیبینیم فقط حرکت زواهر رو میبینیم رو این نظر آمدن گفتن حدوث حدوث ذاتیست نه حدوث زمانی حدوث ذاتیست یعنی دائما اشیا از باطن خودشون متعبد میشن تغییر میکنن هی، مثل آبی که رد میشه از کنم که اینا هی عوض میشن هی تغییر میکنن بعد رسیدیم به از کنم که علوم جدید علوم جدید مقصد در شیمی یه تحقیقاتی کردن که بله این اشیاء مرکب داخل به بساعت میرسن به انصرها میرسن اکسیژین یه انصر فرض کنید که کربون یک انصر و همطور اناسر مختلف که اون جدول مندلیوف از کنم که اینا این عنصرها همه آمدن و از اینا خودشون دارای اطومهای هستن و یه جهت مشترک دارن که وجود اتمه. منطقه شکل وضع اطومهاشون فرق داره یکیشون مثل اطوم ایدروژین یه داره با سرعت داره هسته مرکزی میگه بعضی مثل اطومه های سنگین مثل اورانیوم این ها بار کیسه مثلا مساحت منفی دارن دارای از کنم که مدارهای گوناگون هستن الکترون های مختلف درشون حرکت میکنه های طبیعی دارن و علت تغییر اشیا جابجایی این اتم هاست و تخلیه انرژی چون جهان تنها ماده نیست انرژی هم هست یعنی در اصل جابجایی به جا اتم ها که اشیاء تغییر میکنن یه انرژی هم آزاد میشه علمای دینی مثل علمای مصر مخصوص هستن ها که یواشواش به علوم جدید هم نزدیک شدن گفتن این بهترین نشانه است برای این که از کم عالم عالم امکانه بنابراین اتم ها هم که انرژی های منبسط هستند به متراکم هستند اونام دائما جابجا میشن و انرژی های ارکانم از که آزادی ددام میشه ازشون و خداسه اینکه اونام در تغییر و در تحولند هیچ چیز ثابتی نیست حتی کمونیستان قبول کردن لنین گفته که ستارگان آسمان و شنهایی که در کف رودخانه های و جوی ها هست تمام اینها در باطن در حال حرکت و تغییر دائمی هستند منتها حرفشون این بود که این تغییر ذاتی اشیائه تفریز به اینها نشده ذاتیاً ز... ماده ذاتن بعد در حال حرکت و تحرک باشه علاوه بر این اسلامی متکلمان اسلامی گفتند که ذاتی چند تا خاصیت داره چند تا ملاک داره اینا ذاتی نیست اولا اینکه از ذاتی لا اختلاف ذاتی اختلاف پیدا نمی کنیم فرض کن که اگه این آتش اینجا می اون آتش هم اونجا می چون حرارت ذاتی اگر از کنم که این اشیاء این نوع حرکت ذاتیشون بود همه باید یه نه به حرکت کنن یه شکل حرکت بکنن اگه ذات واحدی بودن انرژی های متقاسب بودن به این صورت در بدن خاصیت شننس آتش و یکسان برد دوم اینکه از ذاتی لا یختلف دوبام این که از ذاتی لا یتخلف ذاتی, ذاتی از صفت خودش تخلف نمی کنه. نمیشه آتشی باشه و گرم نباشه نمیشه آتشی نباشه و سوزنده نباشه مگر خاموش بشه میگویند که اگر این حرکات آدم حرکت ذاتی بود نباید هیچوقت از آلم جلو بشه در حالی که گاهی در اثر دو تا حرکت مختلف همدیگر خونسا میکنن سکون ایجاد میشه ولو موقت باشه پس معلوم میشه حرکت امر ذاتی نیست مثل حرارت نستد به آتش ممکنه از به علاوه حرکت های مختلف داره برخوردهای گناه داره از ذاتی لا یختلف ولایت تخلف ولایت غیر این ملاکای گذاشتن برای امور ذاتی گفتن این حرکاتی که در عالم هست اینا ذاتی نیست اولا سانیان اینا تنظیم شدن همه باید یک قدرت کنترل و تنظیمی باشه که این نظام رو اینطور تنظیم کرده حرکات رو با همدیگه همسو کرده همراه کرده شکل‌های های مختلف آاشتی داده به این حرکات مختلف تا این نظام ایجاد بشه بنابراین یه چیزی بالاتر از این حرکات داخلی اتم ها و به نتیجه ککششان ها و زمین آسمان در کار اینا دخالت کرده که ما او رو همون قدرت نامحدود خداوند میده. ما دین اینجا میگویند که ببین شما این حرفاتون متکی به علت برای معلول ها علت به اصطلاح صاحب میکنین که همون خداست ولی ما از شما میپرسیم اون علتی که شما میگین که علتالعرده اون معلول چه است اون از کجا پیدا شده اونو کی پدید آورده اونو چه آملی ایجادش کرده برای اینکه که قانون علیت اگه بخواین تعمیم بدین از که بعد بگین که در برابر خدا هم باید بگین اونم از کجا پیدا شده مقانون قانون قانون عمومیست بعد علمای اسلام اینجا میگویند که ما نمیگیم هر چیزی علت داره ما میگیم هر پدیدهی علت داره هر پدیدهی که نبوده و پدید آمده حالا چه جدیدن پدید آمده بشه چایی روی مادهی نبوده حالا این شکل جدید رو پیدا کرده ما میگیم پدیده ها و معلولن علت دارن نه هر چیزی علت داشته باشه که وقتی به خدا برسیم شما میگی پس علت خدا چیه این یه جواب جواب دومشون میگویند که این که ما میگیم خدا من علت نداره به دلیل اینکه اون بالاترین قدرت هاست یعنی اگر شما تمام قدرت های موجود عالم رو به فرض شما رو گذاری بکنین ترین قدرت ها رو با این یک بعدش یک دو بعد سه بعد... یکی هست تو این تمام هستی که قدرتش بیش از همه باشه یه موجودی هست بله حتما یکی هست میگن اون نمیتونه دیگه علتش جون علتش بالا از اون بالاتر باشه در حالی که فرض اینه که این بالاترین علت هاست پس ثابت شد که تمام علل میرسن به یک علتی که بالاترین علت هاست و وجود متوقفت میشن در یکی از اینا بالاترین علت ها هست دیگه اون همون خدای تعالی است. که نم یلد و نم یولد معلول هیچ علتی نیست به عبارت دیگه شما یه یک کسی پیدا بشه مثلا 100 کیلو آهن بلند کنه فرض این که یه شخص دیگه پیدا بشه بالاتر از بلند کنه هست یا نه؟ بعد یکی صد کیلو یکی دیگه بالاتر از اون میشه بله سر کیلو کیه که بالاتر از اون نمیشه؟ کسی که هرچی بذارن بلند کنه بالاتر از اون دیگه نیست میگن اون علت نهایی صاحب چنین است بنابراین بالاتر از اون نمیتونه باشه که او رو آورده باشه او قدرتش محدود نیست ولذا ما دیگه این بیشتر روی مسائل عقلی تکیه نمی کنن از قدیم در بین فلاسفه غرب هم یه دسته حسیون بودن که بعد به تجربه گراه ها به اسطلاح پیوستن و دست عقلیون بودن مثل دکارت و کانت و مثلا اینها اینا بیشتر در فلسفهاشون انصار عقل دخالت کردو مثل خود عرستو مثل ابن سینا مثل مولا سر را نرفا اینا میگوین که آقا شما این پدیده های مختلف رو که میگویید که بالاخره اینا یه امور مادی هستن یا از انرژی هستن یا از مادی هستن آخرش به کجا منتعی میشه؟ یعنی هیچی آخرش به ماده و انرژی منتعی میشه؟ خب پس شما یه خدایی دارید که لم یدد و لم یودد خلق نشده کسی ایجادش نکرده اسمش ماده یا انرژیه بنابراین شما هم مثل ما به یک قائم به ذاتی متقدید. ممنونت ها ما میگیم اون قائم به که ما میگیم صاحب کمالات آگاهی داره علم داره قدرت داره به دلیل اینکه آثارش علمیه آثارش آثار قدرته آثارش آثار حیاته شما به یه قائم به منتقل شدید که در تعریف میگید نه علم داره نه حیات داره نه ادراک داره نه اصابگری سرش میشه بنابراین شما در یک اصل که یه قائم بذاتی در عالم هست با ما الهی ها همراهیم منطقه که سفارت اون رو میخواین بشمرین در سفارت با ما اختلاف میکنین در اصل ذات با ما اختلاف نداریم به خصوص که خود شما میگین که اون ماده محسوس نیست ماده محسوس بعد با ز... ازش گذشت رفعقبتر به اعماغ هستی رسید آره و ولیزا میگویند که عقل اگر تجسس بکنه ورای این محسوساتی که شما بش متکی هستین میرسه عالم رو از ریشه بخواد بررسی بکنه اینا میگن نه عقل دیگه حق،, حق نداره در اونجا دخالت بکنه ولی فلاسفه عقلگرا میگویند که دلیلی هم دارید میگن بعد دلیل داریم خب پس این شما حتی اونجا که میخواین نفی عقل بکنین دلیل عقلی باز میارین خود شما گرفتار عقلین چطور میتونین عقل رو نفی بکنین هرکی بخواد عقل رو نفی بکنین میگی ما به چه دلیل شروع میکنین دلیل آورده میو همین از عقلت داری استفاده میکنین بنابراین عقل تا جایی که قدرت پرواز داره باید به پرواز در آوردهش الا را جایی که نیست میگن نمیدونم این رو نمیفهمم بعد به عقل نابزی حکیم تاوکی به فکرت این راه نمیشود پی بکن کل هزار تشخرت براد پی اگر رسد خس به غعر دریا ظری خلاصه این که این جنگ بین بشر که از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا می رویم آخر نه نم آقایی هیچ مستفکری رو ول نمی کنیم دائما تو ذهنش میاد تا از کار دنیا از کم آسود خاطر بشه به خودش برگرده من کیم من چیم چرا آمدم برای چی آمدم از کجا پیدا شدم فلاسفه ما گفتن این دعوت خداست همین دعوت خداست به مبدع و معاد ویل نمیکنه شما رو حیوانات می تنن راحت ظاهرن توی فکران نیستن ما ایم که حتی وقتی نفی می تمام وصول مذهب رو بارها توی این راها رو برای این که این رو نف کنیم ناچاریم وارد این راها بشیم ساختمان ادراکی و عقل بشر ناگذیره که وارد این مباحث بشه چیزی که ذهن بشر رو خیلی به خودش معتوب کرده است بین کارهای عقلی و کارهای عالم یادتون میاد قبلا من گفتم که مرحوم خانم نواب نجاش خدا رو همه چکنه ما یه قمقیسی داریم این منکر خدا بود بعد کنکور داده و پسر جوانی بود رفت دانشگاه رشته پزشکی قبول شد اول بار که تو سالن تشریح رفت و استاد شکمه مرده‌ای رو پاره کرد و گفت مثلا غذا از اینجا میاد وارد معده میشه اینطوری میشه وارد کبد میشه کیلوس میشه وارد این رگ ها میشه مثلا تا به تمام بدن غذا برسونه اینطوری میشه اینطوری میشه آمد فریاد میزد من امروز خدا رو دیدم گفتم خدا رو چجوری دیدی گفت یک کاری دیدم که عقل میگه این خیلی شبیه کار منه بی عقلی این کارو نکرده این کارا رو بی نکرده این یه عقل بزرگی این کارو کرده این خیلی مسئله است که فلاسفه شرق و غربو خیلی گرفته برتان راسل بهش گفتن که تو اگه از دنیا بری و اتفاقا ببینی که بله روحی هست و بقای روح و مسائلی که تو نفت کردی نیست اونجا چی جواب خودارو میده نگفت میگم که خدای من دلیل بر رد تو داشتم. گفتش که میگم اون دلائل بودن اما کافی نبود. کافتن <تصالح> بهش بی انصاف تو در خودت بنگر این همه دلائل هست در دل این حیوانات نگاه کن در این نظام عالم نگاه کن چجوری اکسیژن میخواییم اکسیژن فراهم شده برای تنفیزن و مرد ایجاد شده تا این روزا که یه قدری من حالت گیج و گمی دارم یعنی سرم گیج میره تازه مذه نیروی تاادر رو فهمیدم که در همه موجودات زنده هست گربه ها رو یه خود انگولکشون بکنین تاادرشون از درست این برمیرن اون برمیرن درقه بخورن این چه نیروی چه است که انسان چار نیست دو پاست. با دوپا که نمیشه حریکت که از میخور زمین که تکیه گاه خوب برانم فرام کن ولی تا وقتی که این نیروی تعاضل در تصادف هم نیستون همه دارن هر مدود زمین یه قدری گوش داخلی وزش عوض بشه ونه مصطفای تواتبهی طبع از اینجا پلوی خانم آرز بخوام برم صرف میخوام زمین سبحان الله على نبينا محمد بن الله.